أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلامين ذلکل کتاب مولا ربه فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يعني ما يؤمنون بما بما انزل من غيب سور مبارکه بقره در مدینه نازل شد زیرا بسیاری از احکامی که در مدینه نازل شده است در این سور مطرح شد مسئله روزه گرفتن شهر رمزان مسئله حج مسئله جیهاد امسال زاره اینها در مدینه نازل شد اینا آیات مدنی هم در مکه سخن از روزه گرفتن حدی رفتن جهاد کردن و مانند آن نبود و شواهد دیگری هم در بین هست که این سوره انبارکه در مدینه نازه شد اولین حرفی و کلمی که در این سوره بعد از بسم الله الرحمن الرحیم پس این حرف مغتیه در باره بسم الله الرحمن الرحیم گرچه در سوره انبارکه هم معنا شد ولی بسم الله هر سوره مضمونش مناسب با محتوای همون سوره است اینها تقریبا مشترک لهجتی هستند این صد و 13 بار که بسم الله نازل شده است به صد و 13 معناس معنای هر بسم اللهی مناسب با مضمون همون سوره ای که بسم الله در اول همون سوره قرار گرفته است اگر مضمون سوره بغرت به خوبی روشن شد مضمون کلمه تیبه بسم الله هم به خوبی روشن شد در باری حرف مقصد اگر فرای سبحان توفیق داد در سوره شورا که حامین انسیغاف بیشتر از دیگر سوره حروف مقصد در اون سوره است اونجا ممکنم از علمت در بشه و که این حروف مغتت چیست زال کل کتاب و لا ری بفیه خودند المتقیم این آیه محرکه دو جمعه دارد یکی زال کل کتاب و لا ری بفیه یکی خودند المتقیم اون کتاب ری بیدرونی و هدایت اهل تقویست اولین تعبیری که خدای سبحان از قرآن کریم کرد اشاره کرد به دور اشاره کرد تمود زال کل کتاب نه ها کتاب اون کتاب غیبی نداره. تعبیر از قرآن کریم به اون کتاب به زال کل کتاب برای آن است که قرآن کریم طبق بیان امیر المؤمنین سلام علی و طبق بیان امام ساده سلام علی که این دو روایت قبلن نقل شد تجلیه خدای سبحان است در نحجه البلاقه اینکه این آمده است که فتح جلد سبحانهو لهم فی کتابهی مرغیر ان یکون و رعوهو خدای سبحان برای بندگانش در این کتاب تجلی کرده است. از امام صادق سلام الله علیهن این روایت آمده شو که فرمود تجلا سبحانه او لعبادی فی كلامه او فی کتابه پس به استناد این دوره روایت قران تجلی خدای سبحان است اگر خدا متجلی و قرآن تجلی خدای سبحانه است. یک تجلی خاص است زیرا سراسر عالم تجلی حق است به استناد اون بیان دیگر نحجر برای آقای که حضرت فرمود الحمدالله المتجلی لخلقهی به خلقه سراسر عالم تجلی خدای است ولی قرآن یک تجلی خاص است پس قرآن تجلی خداییست که در این کتاب متجلی شد در باره خدایی سبحان دو تعبیر است گاهی گفته می شود خدا اون خدا گاهی گفته می شود خدایی که با شما نزدیکه است همین دو تعبیری که در باره خدایی سبحان است چه گاهی گفته می شود اون خدا گاهی گفته می شود خدایی که با شما نزدیک است باره تغلی خدای سبحان که قران کریم است همینجا تعبیر آمده گاهی گفته می شود ذال کل کتاب و لا ریب یعنی اون کتاب گاه گفته می شود ان هاذ القرانه يهدی للتي هي این قرآن مردم را به ملت قدیم حرایت میکنه گای تعبیر از این است گای تعبیر از آن گای گفته میشود زال کل کتاب گای گفته میشود حازل قرآن چون قرآن تجلی خدای سبحانه و درباره خدای سبحان همین دو تعبیر آمده است که گای گفته می شود زالکم الله رب بکن که در سوره زمر آمده گای گفته می شود ازا سالک عبادی انی که انی غریبون که در سوره بقر آمد پس هم سخن زالکم الله رب بکن هم سخن که انی غریبون بس. خدایی که درباری او هم زالکم الله آمده هم که اینی قریب و نامده است چون و معکم اینما کنتم هست قریب و نزدیکه است تجلیه این خدای صبحان که قرآن است هم دارای این دو خصوصیت است. گاهی گفته می شود اون قرآن گاهی گفته می شود این قرآن چرا گاهی گفته می شود زال کل کتاب گاه گفته می شود حاضر قرآن اگر قرآن یک کتابی بود نظیر کتاب های عادی که صد رو زیلش در دست انسان بود این فقط حاضر کتاب بود نه زالی کتاب ولی اگر یک کتابی بود چون تناب که یک سرش به دست انسان ها و یک سرش نافیده که به دست خدای سبحانه این حقیقت ظاهری دارد انیق و باطنی دارد انیق چه به ما گفتن و عطسمو به حبل الله این حبل است یک سرش به دست شماست یک سرش به دست خدای سبحانه است و این یک حقیقت است که مرحله نازلش پیش شماست مراحل عالیش پیش فرشتگانست که به عیدی سفر کرامن برره و مرتبه اعلایش لدالله است که رسول خدا وقتی به لدالله رسید خدا در باری اون فرماد این نکل طلق القرآن من لدن حکیم علیم پس یک کتابی است گسترده هم از یک طرف در دست مردم هم از یک طرف در دست خدای است. اون باطنش و امقش و اصلش و ریشش که لدالله هست زالک الکتاب است. این که در دست مردم است مردم در خدمت اوی هم هازالقرآن هست هم هازاز هم زالکه نه دو چیز جدای از همه وقتی انسان به اوش نگاه میکند به خود را حقیر میبیند نگوید زال کتاب. وقتی الفاظ و زواهرشون نگاه میکند که قابل استدلال است قابل فهم است قابل قرارت است قابل تلاوت است قابل بحث و گفتن و نوشتن است نگوید حاضر قرآن محکمات هم ظاهری دارد انیق باطنی دارد امیر. ظاهر محکمات حاضر قرآن است باطن محشماث ذالک الکتاب است چون این کتاب همه این مراحل را زیر پوشش دارد بلحاظ عمقش میتون گفت ذالک الکتاب بلحاظ ظاهرش که ما در خدمت او هستیم میتون گفت هاذ القران پس اگر در سوره اسراء آمد است که ان هاذ القران یهدی للتی یغما و در سوره بقره آمده زالکه لکتابول آره بفید و در بسیاری از سور آمده است تلکه آیات و کتاب و امثال زاره در سوره یونس آمده است در دیگر سور آمده است که تعبیر به تلکه شده است نازره به این نکته خواهد بود که در باره اون اوجش زالکه است در این حضیزش حاضر چون خدای سبحان که متجلیه به این کلام است هم دنا فی اولو و هم علا فی دنو بیه. هم طبق بیان امام سجاد سلام الله در صحیف سجادی دان فی اولو و آلن فی دنو به کلام او هم آلن فی دنو و دان فی اگر خدای سبحان در عین حال که بالاست نزدیک است و در عین حال که نزدیک است دور است فلا فلایورا و به فشهدن نجبا او هم بعید است و هم غریب هم آلیست و هم دانی کلام خدایی که این چنین است او هم دارای قرب و بود خواهد بود دارای علو بود دنوف خواهد بود لذا هم تعبیر زاله که در باره قرآن رو هم تعبیر حاضا بین تجلی و متجلی یقینا فرق هست بین قرآن که به صورت لفظ و کتابت در می با حقیقت ذات اقدس اله که هرگز به این صور جسمانیه مصور نمی شود فرق هست لذا در این تعبیر شریف دعا آمده است که بعده فلا یورا و قروب فشهیدن نجبه دیگه نفرمود قروب فیورا دور است دیده نمی شود نزدیک است می بیند نه نزدیک است دیده می شود بعد فلا یورا و قروب اما فشهیدن نجبه نه قروب فیورا این چی می ولی قرآن کریم چون موجود است ممکن وقتی در برحله قرب ظهور کرده است دیده می شود شهیده می شود نوشته می شود بنابراین هم تعبیر درباره باره قرآن کریم به عنوان حاضار عباس هم به عنوان زانک بله بین قرآن که تجلی خدا به و موجود است ممکن و مخلوق بازات اغبست الاف که متجلی به این کتاب است و موجود از واجب البته یقینا فرد است در سوره مبارکه زخروف به این دو نکته اشاره کرد اول سوره زخروف این است فرمود حامیم و کتاب المبین انا دعالناه قرآن عربیم لعلکم تغیلون و انه هو في امل كتاب لدينا لعلي حكيم همون این قرآن دو مرحله داره یک مرحله است که عربی است ما رو عربی قرار دادیم که بخونید بنویسید تلاوت کنید بحث کنید و مانند مرحله جیگراش سخن از ابری و عربی و سریانی و تازی و پارسی نیست اونجا سخن از لفظ نیست همین قرانی که مرتبه نازلش به صورت لفظ در است و ما او را عربی قرار دادیم که الفاظ مال ماست ان ناجع الله قرآن عربی لعلكم تغیلون همین کتاب و اینهو فی ام کتابه لدینا لعليون حکیم پس این کتاب یک وجود لدالله دارد یک وجود لدناست اون وجودی که لدن ناس دارد عربی است قابل خوندن به نوشتن است از او تعبیل به حاضر می شود اون وجودی که لدالله دارد دیگر سخن از عربی و عبری از او تعبیر به زالکل کتاب بوشود به مانندون انسانی که با حاضر قرآن ارتباط دارد یک سلسل معلومات حصولی مدرسه نصیبش بوشود است که با خوندن و نوشتن می آید و ممکن است فراموش می شود اما اون قرآنی که لدالله موجود است اونجا سخن از لفظ و علم حصولی و صورت ذهنی و کتاب از امثال ذالک نیست انسان تا بالا نرهد و انداللهی نشد و به حضور ذات اقدس الاخ بار نیاخ او را نمی یابد. وقتی که او را درکت می گن علم او لدن نیست علم لدونی علمی نیست در ردیف علوم دیگر که مثلا علوم را سرشماری کنند بگوین علم فقه علم اصول علم ادبیات علم تفسیر علم تاریخ علم جغرافیا علم لدونی علم لدونی علمی, لدونی علمی در برابر دیگر علوم نیست یک موضوع و یک محمول و یک مسئله داشته باشد اگر این حقائق را انسان لدالله سبحانه و تعالی فرا گرست علمش می شود لدنی اگر نه تو کتاب ها بود درس و بحث ها فرا گرفت می شود یه علم عادی لذا فرمود همین قرآن در ریشه کتاب پیش ماست لدینا لغالیون این آلم حکیمون این کتاب محکم در نزد ما محکم و بسیط است در پیش شما مفصل به مرکب این کتاب پیش ما علیذ در پیش شما نازل است که بالحق انزلنا و بالحق نزد اینا انزلنا و فیلی فی این حقیقت ما تنزل دادیم وقتی تنزل دادیم پیش شما رسید در دسترس شما قرار گرفت می شود حاضر قرآن وقتی پیش ماست که در دسترس شما نیست مگر اینکه خیلی اوج بگیرید و بالا بیایید می شود زالکل کتاب پس زالکل کتاب به لحاظ ام و معارف بلند قرآن کریم است حازا به لحاظ ظاهر و مقامات نازله قرآن کریم در سور مبارکه ازاقه هم وقتی قرآن را تشریح می کند آیات افتاد و هفت بعد می فرماید انهو لقرآن کریمون فی کتابن مکنون لایمه سوه الا المتحرون یعنی این کتاب در کتاب دیگر است که اون کتاب مکنون است و پوشید است این قرآن چه قرآن کریم است یک است که شما در خدمت آن این قرآن خود در یک کتاب دیگر است اون کتاب کجاست؟ اون کتاب سر به مهر است در یک چنان است در یک قلاف است در یک جعبه در یک پوشش است خب چی بود افرسی دارد کلیدش چیز اگر مطنون است پوشیده است با چه عاملی باید این پوش قرآن را برداشت سمود او پوشش جسمانی ندارد که با یک کلید شما این پوششش را بردارید چلیدش تهارت است لا یمستهو الا المتحرم این لا یمستهو اگر به قرآن برگرده حکم فقیهش این است که قرآن را کسی دست نمیزند مگر اینکه با تهارت باشه به احدت تهارات سلاس این از سوره ماعده فرمو ازاقومتوم الاس سلاس تقصیب وجود حکم و ایدیه خیم اگر لا یمستهو ضمير به اون قران برگشت یعنی نی, کسی نمیتواند دست به قران بزند یا قران را ببوسد مگر اینکه با وضو و طارد. و اگر لا یمسوه این ضمیر مفعول به کتاب مکنون برگردد معناش دیگر دست دادن و بوسیدن نیست معناش ادراک و نیل و مساس عقلی و قلبی و فهمیدنه اینجج در سوره ازاگر طرف بود فی زمیر انسان بے جے یہ در سوره سورے بیان شد یعنی وضوع و وہ گوشت نداشت نمیتواند با قرآن مساس برقوه کند ولو آیه ای را ببوست ولی اگر زمیر مفعول به کتاب مکنون برگشت نه به قرآن کریم دیگر سخن از حکم فقهی نیست اونجا بوسیدن نیست اونجا دست زدن نیست اونجا به صورت مالیدن نیست اونجا مساس قلبی و عقلیست اون را آیه سوره احزاب که در جریان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسترامه تبیل میکند اینفرمد انما یوری دوله و لیوزه اهل البتابی و تحرک کمذتیره. اونها میشون متهر متهر است که با کتاب مکنون تماس دارد مترانند که با کتاب مکنون در تماس هستند افراد تااهران که با قرآن کریم در تماس هستند پس این قرآن یک کتاب دیگری دارد یعنی یک باطنی دیگری دارد یک مرحره دیگری دارد. اون مرحلهش ذالکد این مرحله نازلش آزاز هم میتون گفت ان هاذ القران یهدی للتیقون هم میتون گفت ذالکل کتاب و لا ریب فیه هدل للمتقین هم او هادی هم این هادی هم ان هاذ القران یهدی هم ذالکل کتاب و دلل است منطقه اون ظاله که ناظر به اون عمقه اون مرحله عالیه این حاضر ناظره به مرحله تنظر یافته است که با امزال و تنظیل و نزول سازگار است به الحق انزل و نه و به الحق نزل آن نه بله دیگه بله برجسته ترین متقیم همون احل بیت اسمت به تارت اونها رو یافتن و به دیگران تشریح کرده شابردانشون ها موختن نه مرحله آلیهش را اونها میفهمند فهمن و مرحله نازلش دیگران در همون خصبه ای که از دمیر سلامون داره فرمایت فتجل لهم سبحانهون فی کتابهی من غیر ان یکون و یرهو یا در خصبه دیگر می فهمد به این همه حقه در قرآن کریم هست یاریاں گذشته و آینده تا قیامت در قرآن کریم هست. حسب تنقوه اگر توانستید قرآن رو استنطاق کنید یعنی او رو به حرف در بیارید. اما ولن ینطقه او با شما حرف نمی زنه. ولا کنی انبهو کن به مافیه منم که سخنگوی قرآنم. منم که او رو به حرف در میارم. منم که حرف او به زبان او رو میفهمم. این پیداست که لایه مصور در محترم است دیگه. اگر همه حواها در قرآن است حضرت اما چیزی نیست که قران نباشد ولی اگر هنر داشتید او رو به زبان در بیارید پس تنقوه ولی او هرگز با شما حرف نمی زند بلن تنقه ولکنی اون به اون به مافیه خلاصه ما تو اینطوری که و کتابان خالصان میشید كناخه معصومین هم از این جهت که با دیگران در احکام یکسانند با دیگران در این نشر سر میبرند از این جهت با دیگران یکسانن اونم تکلیفی دارن دستوراتی دارن مثل دیگر از این جهت که دنافد دلافکان قا با حسین او ادنان اسیب اینها می شود اینو در اونجا خودشون زالکن خود امام زالکه است خود پیامبر زالک است لذا امام رضا سلام الله وقتی وارد خراسان شد سوال کرد مسئله روز شیست از اشکالن امامت و خلافت تنود مگر امامت یا خلافت رسول خدای چیست که در دست دیگران باشد به حیث و نجم من عید المتناقلین و ید المتناقلین به لسان الواصفین اینال اغول منحازا و اینال اختیار منحازا فرمود امام و امامر از باب تشبیه معقول و محسوس مثل است که همون طوره که نجم آسمان در دسترت کسی نیست امام و امام شناسی هم در دسترت کسی نیست تا مردم امام رو بشناسن امام تعیین کنن امام رو با خدا بشناسن به خدا معین کنن تمود ذهبه بهی حیث و نجم من ید المتناولین اینال اغول منهازا و اینال اختیار منحازا همون طوری که نجم آسمان در درست زمینی ها مقام شامخه امامت امام هم در درست فکر مردم عادی نیست امام هم مثل خود قرآن چون قرآن متحرک هست این دو خصیفه رو برد هردوش لاره بست ولی سخن از تعبیر از قرآن است به دو عبارت هم حاضر قرآن لاره بفی هم زالقه کتاب لاره بفی اما چرا گاهی زالقه گفته می شود چرا حاضر به این نکته است به مقتضایه ها سخن گفتن برای این نکته است نینکه این اوصاف مخصوص به زالقه باشد و حاضر اینها نرشته باشد این حاضر قرآن یه حدید و اقوام همه مذایار داره است بنابراین چون خود سوره مبارکه اضافه و همچنین سوره زخرو برای قرآن دو نشعت ترسیم چند ایکی نشعه ظاهر است یکی نشعه باطن و عالی به لحاظ هر نشعه می شود لفظ مناسب اون نشعه را تعبیل کرد هم میتوان گفت حاضا هم می توان گفت زالکه اگر در سوره یونوس هم این چی آمده است اول سون یونوس که لام را تلکه آیات کتاب الحکیم به همین مناسبت است تلکه هم نظیر زالکه در قرآن کم نیست که از آیات قرآن کریم به عنوان تلکه یاد شده است در سوره انعام آیه سد و, و پنج هم تعبیر از قرآن کریم به عنوان هازا نازل قرآن بیاره تمود و حاضر شتابون انزلناهو مبارکون فتبعوهو وقتهو لعلکون طور همون تمود این شتابی که ما او را نازل کردیم و حاضر شتابون انزلناهو وقتی متنظر شد و نازل شد در دفرت شما قرار گرفت می شود هازا و هازا کتابون انزلناهو مبارکون فتبیوهو بدتقو لغالکون ترحمون که ان انتقودو انما از در کتاب پس بنابراین گاهی از کتاب به زالکه گاهی از کتاب به عنوان هازا چی این که گاهی از همین حقیقت به عنوان زالکه کتاب نگاهی از همین حقیقت به عنوان حاذالقران که حاذا استثناسی به قران ندارد در خصوص کتابم باز حاذا کتابون آمده و این نشانه آن است که انسان اگر با حاذا ارتباط دارد یک سلسله وجودات لفظی وجودات ذهنی وجودات کتبی نصیب اوست یعنی می‌خواند می‌نویسد حفظ می‌کند بهماند ولی اگر خواست با ظالک علی کتاب ارتباط پیدا کند با خوندن و نوشتن و تلاوت و امثال ظالک مقدورش نیست و کرید و هم تهارته بله اما اونجا سخن از ایمان به غیب نیست در اونجا وقتی احکام را مشخص می فرماید نظر این نهاز القرآن یهدید لطه یقبند و اما در اینجا سفن از ایمان به غیب است ایمان به قیب نشانه آن است که قرآن یک غیبی دارد و دا از اندقیب آمده است آیه سوره اسراین ای است این لحاظ القرآن یهدی للده یقوام و یبشر المؤمنین الذین یعمرون السالحات ان لهم اجران کبیره فانا الذين لا يؤمنون بالاخره اعتهدنا لهم عذابا علیما ومانجا اما اینجا وقتی چی میفرماید هدن للمتقین اولین وقتی که ذکر میکند میگه الذين يؤمنون بالغیب يؤمنون بالغیب نه یعنی اون غیبی که در مشعه طبیعت هست منتها از حواس غایب است مثل اینکه انسان پشت این دیوارم نمیدبینه و اگر خبر داد میگن او علم به غیب دارد این غیب طبیهیست، این غیب نسبی است. اون غیبی که در این کری و مدرهشت یعمی نون یعنی از جهان طبیعت غیب هست. نه اینکه از جدوه کشم شما غایب از پشه دیوار است. اون در حقیقت از شما غایب است نه وجودش وجود غیبیست. یک وقت انسان از پشه دیوار خبر می بادهد، او علم غیب داشت. یعنی از دیده شما غایب است ولی وجودش وجود مابلی است اونچ که پشت دیوار است با اونچ که جلوی دیوار است هر دو موجود مادی هر دو مال عالم طبیعت است هیچ کدام موجود غیبی نیستن اما ذات اقدس اله و اسماء حسناش اصلا وجودش وجود غیبی است نه اینکه تنها از چشم غایب است از جهان طبیعت قائب است کسی که ایمان به غیب این چنین نیاورد حتما او را باید به با اون بلندی قران آشنا کرد و به او گفت ذالکل کتاب والحمد لله رب العالمین